به نام خدا کتاب افسانه های 72 ملت ترجمه احمد شاملو ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سما مهربان سه هفت کلاغان یکی بود، یکی نبود یه مردی بود، هفت و پسر داشت یه خونه داشت، سر یه تپه، نزدیک یه چشمه با کشتوکاری که میکرد با زنش و هفت و پسرش عمری میگذرند و خوشبخت بود تا اینکه که زدو خدا بهش یه دختر داد اما فقط خدا خودش میدونه که این دختر چقدر ضعیف و چقدر ریزه بود درست قدیه موش بود که پوستشو کنده باشن. خلاصه اونقدر این دختر کوچولو مردنی بود که پدر و مادرش ترسشون برداشت گفتند: نه این بچه موندنی نیست حتما خدا اونو برای این به ما داده که برش گردونه تا در بهش رو بری ما باز کنه. این بود که به فکر افتادند همون دقیقه بچه رو بشورن و تمیزش کنند که اگه زنده نموند و مرد لاغل تمیز باشه اما وقتی پدر رفت آب بیاره دید کوزه ها خشک و خالیه دری یه قضیه چکه آب به پسرا کرد و گفت پسرا یالا یالا برید لبه چشمه آب بیارید سود باشید بچه ها جستی زدند و کوزه ها رو برداشتند از خوشحالی اینکه که پدر مادرشون اینقدر به وجود اونها احتیاج دارند، سر از پا نمیشناختند، خوشحال و خندون هر هفته دویدن طرف چشمه. چشمه پایی تپه زیر سایه تا درخت آن از وسط یک تخت سنگ می جوشید. چشمه کوچیکی بود و هر کدوم از پسرها هم میخواست اول کوزه خودشو پر کنه تا آب و زودتر از برادراش به خونه برسونه این بود که شروع کردن به پس زدن یک دیگر دادن همون زدن به هم دیگر. اونقدر با هم کلنجا رفتن که کوزه هاشون یا به همدیگه دیگه برخورد و شکست یا بر برخورد با تخت سنگی که چشمه از توش میجوشید شکست خورد و ریز شد و صمیر به. از اون طرف پدرشون پای گهبار دخترش ایستاده بود و از بی صبری مدام این پاوم پا می کرد گفت همان دست این پسرا چرا نمیان؟ پس کجان اینا؟ دیگه از بی به جون آمده بود. همین که رفت و پنجره ها رو باز کرد سر صدای پسرهاشو رو شنید صدای سرزنش و گریه هاشون و قیل و قالشون. درست شبیه غیغال کلاغا بود که روزای ابری کله سهر بیدار میشن لونه هاشون چرخ میزنن و جیغ میکشن و برف و صدا میکنن رو کرد به زنش و گفت میشنوی تو رو خدا میشنوی عوض اینکه کمکی به ما بکنن سر چشمه چه سر و صدایی رو انداختن؟ انگار آدم داره سر وصدای کلاق میشنوه بعد سرش از پنجره بیرون کرد و از ته دل فریاد زد. خدایا! خدایا! من از شر این پسرهای لعنتی نجات بده. هر هفتاشون به صورت کلاق در بیا. از بس خشمگین بود. خودشم نفهمید چی گفت از خدا چی خواست. اما ناگهان دید که از کنار چشمه یک دسته هفتایی کلاق به هوا پرید. سه بار دور خونه چرخ زد و بعد به طرف کوه رفت و ناپدید شد پدر به اونها نگاه کرد فهمید پسرای خودش که به شکل کلاق در اومدن از نفرینی که در حقشون کرده بود پشیمون شد اما دیگه پشیمونی چه سودی داشت؟ پسرا کلاق شده بودن و پریده بودن خدایا چه سرنوشت شومی اون وقت با زنش دوتایی نشستن زانوهاشون گرفتن به بغل و اونقدر گریه کردن که چیزی نمونده بود چشماشون کور بشه بله تا پسر رفتند واقعیمون دخترشون که تازه به دنیا اومده بود و از بس ضعیف بود خیال کرده بودم همون ساعت میبیره اما دختر کوچولو نه تنها نمرد و زنده موند بلکه روز به روزم خوشگلتر شد تا اونجا که به ماه میگفت تو در نیا که من در اومدم بعد از اون که پا گذاشت توی هشت سالگی یه روز که رفته بود سر چشمه تا ها رو آب بکنه موقع برگشتن شنید که یکی از زنها به یه زن دیگه میگه این دختر کوچولو چقدر زیبا شده هم تفلکی ها همشون پسرای زیبایی بودن خدا میدونه پدر مادرشون از اینکه هر هفتارو اونطور ناگهانی از دست دادن چقدر عذاب کشیدن دختر کوچولو که این حرف رو شنید سر خشک شد و همونجا زیر یه بوته نشست دل کوچیکش پر از غم و اندوه شد بعد از اینکه مدتی گریه کرد بلند شد دویید عقب اون زن و هم که بهش رسید گفت مادر راسته که من هفت تا برادر داشتم زن اول خواست جواب بده اما دخترک اونقدر اسرار کرد که بالاخره مجبور شد قصه هفت برادران رو که روز تولد دخترک از نفرین پدرشون کلاق شده بودند برای اون تعریف کرد دخترک همین که قصه رو شنید قصه صد چندان شد با خودش گفت ای دل قافل دیدی؟ حالا میفهمم چرا پدر و مادرم همیشه. و اون وقت بدون که دیگه چیزی بگه و به دروبرش به منظره تپه ها و درخت ها نگاه بکنه گریه کنون برگشت به خونشون. رو گذاشت و دوید پیش مادرش. زار زار کریه کرد. گفت مادر من حالا دیگه میدونم که تو بابام چرا همیشه قصه دارید. اما قصه من صد برابر از قصه شما بیشتره چون علت این بدبختی فقط قدم شما من بود حالا وظیفه منه که برم اونا رو پیدا کنم به خونه برگردونم من میرم من میرم و تا وقتی که برادرامو پیدا نکرده باشم من بر نمیگردم مادر بیچاره که هنوز دوری هفت پسرش فراموشش نشده بود از اینکه حالا میدید دختر کوچولوشم می خواد به دنبال اونها بره، غمش یکی بود، هزار تا شد. با وجود این فکر کرد که خب حالا که دیگه نمیتونه پیش از ازین دوری پسرهاشو تحمل کنه، پس و دخترش هم بره، خدا بزرگه شاید بتونه بردارشو پیدا کنه و به خونه برگردونه. این بود که دیگه چیزی نگفت. همینقدر دخترش رو دعا کرد و انگشتر خودشو با تنها چارپایی که توی خونه داشتن به اون داد. فکر که انگشتر علامت خوبی و شکون داره و روی این چارپایه هم دخترک هر جا که خیلی خسته شد میتونه بشینه و خستگی در کنه. دختر کوچولو هم انگشتر رو گرفت و هم چارپایه رو برداشت و به پدر و مادرش خداحافظی گفت و رفت که برادرش رو پیدا کنه. پشت چشم کوههای سربلندی بود که دخترک دامنه اون رو پیش گرفت و شروع کرد به بالا رفتن. بالای اولین قله که رسید دید روبروش قرص و قصه زیبایی در اومده. نیم دایره عظیمی به رنگای سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی و حتی نیلی و بنفش. اونقدر پاک و اونقدر پررنگ که به یه پل بلوری بیشتر داشت. آدم وادم خیال میکرد همینطور که از روی یه پل میشه گذشت از روی اونم میشه بگذره و به سرزمین های دور به ستاره ها و به ماه بره همینطور از گوه بالا رفت و بالا رفت تا رسید به تخت سنگ صافی که یه پیرزال روش نشسته بود و انگار داشت خستگی درمی کرد. پیرزن گفت دختر جان با این چارپایی کچولت کجا میری? دختر گفت میرم برادرامو پیدا کنم. اونها روز تولد من کلاق شدن و پریدن رفتن. حالا وظیفه منه که اگه به ماه هم رفته باشن برم به ماه پیداشون کنم. برشون گردونم پیش بابا و مامانم. پیرزن گفت نه دختر کوچولو تو برادراتو توی ماه نمیتونی پیدا کنی اما اگه دلت بخواد من میتونم راه خونشون نشونت بدم خونه‌ی اونا نوک کوه سنگ بلوره اما راهش اونقدر صاف و شیب داره که خدا میدونه عین کف دست احدی نمیتونه از اون بالا بره چون که آدم وقتی یه قدم به جلو برداشت چهار قدم به عقب سر میخوره. حالا فکراتو بکن ببین میتونی از چنین راهی بالا بری یا نه دودای کچولو گفت مادر من هر جور شده باید برم برادرمو باید پیدا کنم پیرزال گفت خیلی خوب بچه جان پس این پاپوش های ای رو بگیر و را بیفت که وقتی به اونجا رسیدی و خواستی از کوه سنگ بلور بالا بری پات کنیم اینم کلید خونه برادرات که روزا میرن و آفتاب که غروب کرد برگردن این کور راه رو که جلوی رود میبینی بگیر و رابی بیفت. اما بازم بهت میگم اگه زیاد به خودت اطمینان نداری بی خود خودتو خسته نکن. دخترک با پوشا رو گرفت، کلید خونه برادرهاش رو به جیب گذاشت و چار پایش رو برداشت و به پیرزن خدا نگهداری گفت و راه افتاد. اگر آدم توی چشمای درشتش نگاه میکرد برق رو توی چشماش میدید و میفهمید که چقدر به پیدا کردن برادراش امیدواره فکر پیدا کردن هفت برادران چنان اونو رو جلو میبرد که انگار بندی به گردنش بسته بود و از پیش میکشیدش اما حالا کو تا کوه هفت گلاغان حالا حالا باید راه بره از کوکوتل ها بالا بره از دره و نشیبا پایین بیاد اونقدر رفت و رفت که دیگه نا و نفس براش نمود های دراز و روزهای دراز راه رفت چقدر دلش میخواست چارپایهش رو با خودش داشت و گاهی روی اون میشست و خستگی میگره اما حیف که بین راه ناچار شده بود چارپایه رو بندازه اونطور که مجبور میشد با چنگ و ناخون از سنگلاخ ها و سخره ها بالا بره. چطور می تونست چارپایه رو با خودش نگه داره؟ بله چند شبان روز دیگه رفت. تا بالاخره به پای کوه سنگ بلور رسید. بیمحتلی پاپوشای پارچه ای رو که پیرزن بهش داده بود پا کرد و شروع کرد به بالا رفتن. ما وجود این؟ هر یک قدمی که به جلو برمی‌داشت، چند قدم به عقب سر می‌خورد. پیش می‌رفت، می‌سُرید، می‌گلتید، دوباره پا شد هر دندانه سنگی که به چشمش می‌خورد، بهش چنگ می‌انداخت. همه ناخوناش شکست و همه انگشتاش غرق خون شد. اما هنوز همونطور بالا می‌رفت. می‌گفت: خدایا چه کوه بلندی! چه سنگای لغزانی و مدام به خودش نصیحت میکرد مبادا حوض کنی که برگردی زیر پاد به ته دره نگاه کنی سرت گیچ میره میوفتی تیکه بزرگت گوشت میشه بالا رفت بالا رفت و اونقدر بالا رفت که یک بار همین که جلوش رو نگاه کرد دید به کلبه بالا قول رسیده اما همین که خوشحال و زخ کنون دست به جیب برد دید کلیدی که پیرزال بهش داده بود نیست معلومه اونقدر که افتاد و بلند شد چطور میشد که کلید رو گم نکرده باشه باز جای شکرش باقی بود که انگشترش همونطور سر جاش بود تو فکر فرو رفت که حالا چیکار کنه و چیکار نکنه اما سوراخ قفل در رو که نگاه کرد دید انگشتش اون تو جا میشه خوشحال شد انگشتش رو توی سوراخ قفل کرد و چرخوند کلون در پس رفت در باز شد قدم گذاشت توی خونه اما چه قدم گذاشتنی که دیگه از گوشنگی و تشنگی تا و, و نداشت چشمش افتاد به اوج دید که روش دیگه بزرگی پر از خوراکای لذیذ میجوشه احلوی دیگه هم چشش افتاد به سفره که وقتی بازش کرد دید یه کلوچه یا خوشگل درسته اون توه خوشحال شد چارپایی رو که وسط اتاق بود کشید جلو نشست روی اون و کمی نون و خورش خورد تا سیر شد بعدن کوزه آب خونکی رو که اونجا بود برداشت و سر کشید تا تشنگیش برطرف شد اما همین که خواست بردم پنجره تا از اون بالا منظره غروب کردن آفتاب و توی دره سنگ بلور سیاحت کنه چشمش افتاد به هفت تا کلاغ که تو هوا داشتن بال بال می زدن به طرف خونه می اومدن همین که چشم دخترک به کلاغ افتاد جلدی مادرش مادرشو در آور انداخت توی کوزه آب و پرید توی تاپوی آرد قایم شد قایم شدن دخترک همون بود و وارد شدن هفت و برادرام هم همون. چون که اونا آفتاب که میزد به شکل کلاق در می و می که میشد شد بر می به و دوباره شکل رو پیدا میکردند. اولین برادر گفت: برادر، یه نفر اومده اینجا چون در خونه باز بود. دومی گفت: برادر، یه نفر جلوی اجاق نشسته چون چهارپای جابجا شده. برادر سومی گفت: یه نفر به صفره دست زده چون سفره به هم خورده. اون یکی دیگه گفت: یه نفر از این کولوچه خورده چون این کولوچه دست نخورده بود برادر پنجمی گفت یه نفر از توی دیک خورش در آورده چون در دیک بازه شیشومی گفتش برادر یه نفر از این کوزه آب خورده چون لب کوزه تر شده برادر هفتمی ته کوزه رو نگاه کرد گفت بچه ها ببینید کسی که اینجا اومده هیچ کس نیست که خواهر کوچولومون چون که نگاه کنید انگشتر مادرمون رو انداخته توی کوزه دختره کس شنیدن صدای برادرهاش مثل این بود که دنیا رو بهش دادن تا اینو شنفت از توی تاپو بیرون پرید به گردن برادرهاشو گفت برادر کوچیکمون راست میگه من اومده بودم که شما را پیدا کنم به خونه براتون گردونم اما لازم بود که برادرها همون شب برگردند که تا پیش از طولوی آفتاب بتونن از چشمه پهلوی منزلشون هر کدوم یه جوره آب بخورن. چون اگه پیش از رسیدن به چشمه و خوردن یه قورت آب آفتاب به تنشون میخورد باز به همون شکل کلاق در میامدند. خواهر کوچولو از ذوق پیدا کردن برادرش همه خستگیش را از یاد برد دوباره از گوه سنگ بلور همون رای رو که اومده بود پیش گرفت و همراه برادرش از اونجا به طرف خونشون سرازیر شد. از قضا اون شب یک محط حسابیم بود که جلوی راه اونها رو مثل روز روشن می کرد. خواهر کوچولو که راه رو بلد بود، از جلو هفت هفته برادرام از پشت سرش مثل سورسوره روی سنگ بولور نشستند و از پشت هم دیگر رو بغل زدند و مثل برق و باد از کوه سرازیر شدند رسیدن پای کوه و از اونجا هم چون که خوهر کوچولوشون راه رو خوب بیاد گرفته بود تونستن راه چند شبانه روزه رو یه شبه تی کنن و درست چند لحظه قبل از اینکه آفتاب سر بزنه خودشونو برسونن به چشمه و یکی یکی یه جوره آب بخورن و خودشون از شکل کلاغی که روزها پیدا میکردند نجات بدند. حالا دیگه معلومه که پدر مادرشون از دیدن پسرها و دخترشون غزوخ کردن و شادی کردند. اما پدرشون از اینکه با یک خشم بیجا اون طور باعث دربدری بچه ها شده بود تا آخر عمر شرمسار و پشیمان باقی موند.